فصل سوم آن سوی واقعه آشق است اما یاغیان بزرگ اصولی دارند زیبایی یاغیگری فقط در حفظ همان اصول است جدی است اما عبوس نیست اصل بیخود از خیش با صدای بلند شتابان گفت اینطور نمی شود، اصلا نمی شود از سفر بلند رؤیا آمده ای خوب است، عالی است، شدنی اما نیست. هر هفته و در تمام هفته های عمر خود را تکرار کردن، حتی به زیبا ترین صورت ممکن زندگی من را مملو از کسالتی مرگ بار خواهد کرد و ما را خسته از بیرنگی تکرار، چارچوب، هرقدر چارچوبی که به کار میبری بزرگ باشد به خیال خودت برای وسعت میدان عمل بوم بودن من را سختتر و بیرحمانه به سلیب میکشد از چهار سو این خیشتن را با بهترین دار دنیا به دار آویختن است خیشتن را به داری آهنین و اوستوار آویختن اصل سرریز میکند اما نه به سنگینی و کندی اصل تو یک سال شب و روز در آن اتاقک محقره در هم ریخته نشستی و نوشتی یک سال یک برنامه برنامهٔ مدرسهای ایار غمانگیز انشا املا ریاضیات ورزش انشا املا ریاضیات ورزش انشا املا به التماس میگویم اصل اصل مجبورت که نکردم، چرا اینطور حراسان شده ای؟ میخکوبت که نکردم، تو مثل همیشه کاملا آزادی این تقدیر نیست که نتوانی از آن سرپیچی کنی من سرنوشت نساختم، برنامه نوشتم من، من، صدای آرام گریم برخواست همه این جانکندن های ذهن و عین فقط به خاطر آن محبوب آزری من بود زن گفته بود زندگی من در بینظمی غریبی غرق شده است در یک نواختی پیری که بوی نا دهد در چرکابه ارواح بلا تکلیف تو می گفتی عادت یعنی دور شدن از انسانیت از تفکر خلاق مگر نه حال نگاه کن موجها ما را به این سو و انسو می اندازند و زمانی هم بر ماسه های ساحلی خواهند انداخت ماهی های مسموم شده مرده لزج گندیده ما حتی خوبترین کارهایمان را به عادت می‌کنیم. اصل می گفت: شدن که هیچ دیگر برای بودن هم دلیلی نداریم. بله، مغلها مقابل با مغلها همیشه بهانه خوبی است برای آشفته و کثیف زندگی کردن. بله، اما تهاجم مغلها هم آرام آرام شکل گرفت. به حکومت مغلها رسید به سلطه بد و بعد انحلال مغلها در فرهنگی که به قول تو تواناترین در عالم بود و هست فرهنگ عشق که اسکندر را بلعید، عرب را، ترک را و بله لاعقل تا مغلها مغل بودند حرکتی حس می شد. حرکتی به جانبی، هیچ برگشتی هم در کار نبود، هیچ تکراری، هیچ توقفی. امروز مغلها مثل دیروزشان و مثل فردایشان نبود. آقبت، نرم نرمک از اسبهایشان پیاده شدند که این هم حرکت بود. شمشیرهایشان را قلاف کردند، زانو زدند، نماز خواندند. پای عارف را بوسیدند گریه کردند می‌خواستیم ببخشیمشان به خاطر همه کارهای خوبی که کرده بودند زانویی که بر خاک زده بودند و گریستنهایی از ته قلب اما قبل از آنکه ببخشیمشان آب شدند حل شدند بخار شدند عاشق شدند و تمام بله در عصر حمله دوم مغلها، من و تو خشمگین و زخم خورده بودیم. اما مهمتر از خشم ما و زخم ما این بود که می دویدیم و جابجا جا شدیم، اتاق که من را هم می آراستیم. نرگس مرتوب عشق، گرچه واژه بود اما رنگ تمام ما زنده سال. در تن آن واژه می دوید، ماه های گل یخ، ماه شکوفه، ماه های گیلاس، ماه های نرگست کازرون و تمام سال که در تصرف گل سرخ بود. ما در انتظار هم می ماندیم، تنها غذا نمی خوردیم مگر در زندان، یک بار، شش روز سفره غذایی که چیده بودم باز ماند. من سراسر چادر شب را وصله کردم. ما کتابهایی را که می سر جاهایشان میگذاشتیم گذاشتیم و درباری آنها با هم حرف میزدیم. بعد بین از آمد. آشفتگی، هرج و مرج به سر دویدن و نرسیدن نداشتن جایی برای رسیدن نداشتن چیزی فراروی خیش حتی آن دور دور خورشید. نداشتن قله مسیر هرفی شدن و حتی ماهر شدن اما در جادویدن. هیچ چیز نفرت انگیزتر از خاطره شدن عشق نیست بیات عشق را یک پارچه کپک پوشانده است از آن سالها گفتن آنطور که انگار دیگر این سالها از جنس این سالها نیست، است به زبان مردگان. وقتی عصر دوم مغلها به پایان رسید، ما هم حذف شدیم. چنان که گویی فقط برای جنگیدن با مغلها آمده بودیم. کفش‌هایمان پاره و خاکا شد. تقلید به پیش دویدن بود، اما در جا دویدن نه عاشق بلکه مشکوک به بیماری قلبی همچنان زیر پله خودمان را داشتیم درست دادنهای خصوصی در خانه های مردم و خردکارهای دیگر و یک پای که قدری کشیده میشد. اما چیزی حصف شده بود که نمی تحت هیچ شرایطی حذف شود چیزی که بوی خوش سوالان را داشت و رتوبت سهرگاهی لاهیجان را من از دور دوان می آیم و بر سر صفریتو می نشینم. نان تازه دهی، پنیر محلی، خیار تازه. اما انگار که هر حرکتی عداست و بوی کهنگی گرفته است. چرا باید همه چیز بوی کهنگی بگیرد؟ چرا نباید زندگی من شکل داشته باشد؟ نور، زاویه درست، رنگ و مقصد به خصوص مقصد این ما بودیم که مصرفی شدیم گیل مرد نه عشق که تو میخواستی به کار من بیاید و مصرف شود و من فقط همین را نخواستم پنهان کنم و به همین هم اعتراض کردم به رنگ های کدر و بوی نا دیدم که انگار تو نمی بینی و نمی بویی و به سراحت گفتم گیل مرد کوچک، زندگی مان از ریخت افتاده، عاشق همیم اما از عشق، از جلای عشق خبری نیست. اما هرگز نگفتم یک ریخت ماندگار به آن بده، نگفتم کشایی و شور ناگهانی بودن را از آن بگیر، نگفتم به جای زندگی مان که به کلی از شکل و حالت افتاده یک قطعه سنگ سیاه شکیل بگذار، نگفتم مجسم اشکن تو نباید به پذیری که در درون یک تندیس زندگی کنیم هر همان تندیس زیبا باشد ما باید از کنار همه تندیس های جهان بگذریم و در برابر هر کدامشان خوب است که چند لحظه بمانیم اما دایره بسته دیدار نسازیم این مجسمه را نگاه کن انگار بد اخمی تمام تاریخ را روی صورتش نشاندند. مگر تاریخ بد اخمه است گیل مرد؟